عزیزان آیا با سختی، مشکلات و طوفان‌های زندگی مواجه شدین؟ آیا فکر میکنین چون پیروه ایسای مسیح هستید نباید در زندگی سختی، مشکلات و یا طوفان داشته باشین؟ کلام خدا به سراحت میگه که ما مشکلات و سختی و حتی جفاها رو تحمل خواهیم کرد. اما خداوند به ما وعده داده که همیشه با ما باشه. مطالب زیادی هست که ما باید یاد بگیریم در طوفان‌های زندگی چه واکنشی نشون بدیم بیاید در درس امروز با معلممون همراه باشیم و مطالب بیشتری از کلام خدا رو یاد بگیریم وقتی که دنیا نفس و شریر ما رو به گردابی پرتاب میکنه چیکار میکنیم؟ وقتی که بیش از حد توانمون تحت فشار قرار میگیریم چیکار میکنیم؟ امروز ما دلایل کتاب مقدسی رو خواهیم دید که چرا مردم رنج میکشند و با امید خواهیم دید که رفتارهای خداشناسانه در قبال این شرایط سخت که بهش طوفان‌های زندگی میگیم چی هستند شاید توجه کردید که همه ما هر از گاهی طوفان‌ها رو تجربه می‌کنیم اما خدا هدفی از اونها داره و امروز ما اونها رو مطالعه می‌کنیم مایلم که جلسات بیشتری رو برای بررسی موضوع رنج‌ها که موضوعی فراگیر در کتاب مقدس هست اختصاص بدم ما این موضوع رو در کتاب ایوب دیدیم و بارها و بارها زمن بررسی کتاب مقدس به اون برمی میخوریم. در جلسه قبل گفتیم که سی دلیل کتاب مقدسی برای این هست که چرا خدا اجازه میده قومش رنج بکشند؟ در جلسه امروز میخوام که بعضی از اون دلایل رو از آیات کتاب مقدس بررسی کنیم. از بین سی متن کتاب مقدس که ذکر کردم یکی از بزرگترین اونها در دوم قرنتیان باب شش هست. پولس رسول در باب شش منظور و هدف از رنج ها رو ذکر میکنه. کنه. پولوس به ما میگه گه که رنج ها مانند یک دانشکده ای هستند که خدا ترتیب داده که تی اون دوره خدا خادمین شایسته ای تربیت میکنه. پولس رسول می نویسه که با تی کردن این دوره از رنج ها ثابت می کنیم که می تونیم خادم خدا باشیم. وقتی پولس کلمه خادم رو به کار میبره منظورش کشیش نیست. منظورش خدمتی هست که از هر ایمانداری انتظار می ره. در یکی دیگر از نامهاش پولس رسول به ما میگه که هدف از ایجاد کلیساها اینه که مقدسینی برای خدمت در کار خدا آماده کنه. وقتی پولس به کلمه مقدس اشاره میکنه منظورش کسی هست که جدا شده و پیرو ایسای مسیح هست. کسی که تقدیس شده یا جدا شده که ایسا رو پیروی کنه مقدس هست. پس پولس برای ایمانداران به عبارت دیگه مسیحیان کلیسا کلامی مقدس رو به کار میبره پولس میگه منظور از اینکه در کلیسا ها هم میاییم اینه که خادمینی برای کار خدا آماده کنیم پولس در افسسیان 4:12 میگه که کار خدمت به چند متخصص سپرده نمیشه بلکه به مقدسین سپرده میشه یا به کسانی که امروزه به اونها اعضای کلیسا میگیم من معتقدم که خدا میخواد کار خدمتش رو توسط افراد غیر متخصص انجام بده به این دلیل هست که من متعهد هستم که به افراد غیر متخصص کلام خدا رو یاد بدم. اگر اشخاص غیر متخصص بتونن کسب دانش کتاب مقدسی رو توسعه بدن و وارد کلام خدا بشن و اجازه بدن کلام خدا در اونها قرار بگیره اون وقت اونها کسانی هستند که خدا میخواد کارش توسط اونها انجام بشه. پولس کلمه خادم رو در چنین زمینه ای به کار میبره. چطور میتونید ثابت کنید که یک خادم هستید؟ پولس میگه خدا از رنج ها استفاده میکنه تا شما را برای خدمتش آماده کنه. پولس می نویسه ما نمیخواهیم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشیم، مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود. بلکه می با هر کاری که میکنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم. یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواری ها ما در شلاخ خوردن ها، حبس ها، شورش ها، بیخابی ها گرستنگی ها و تلاش ها نشان میدهیم که خادمان خدا هستیم تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بیریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام میدیم تمامی این چیزهایی که بهش طوفان گفتیم در دوم قرنتیان باب 6 آیات سه تا هفت ذکر شده به گفته پولس وقتی خدا میخواهد از من و شما خادم بسازه اجازه میده که چنین چیزهایی وارد زندگی ما بشه چون که فقط با چنین تجربیاتی هست که میتونیم شایستگی خدمت برای عیسی مسیح رو پیدا کنیم. وقتی که با طوفانی مواجه میشید، به گفته پولس مهمترین چیز واکنش شما هست. در آیه شش پولس به ما میگه که چطور به اون فشارها واکنش نشون میده. پولس به ما میگه که او با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی واکنش نشون میده. در آیات شش و هفت این مد، پولس به ما میگه که برای به دست آوردن نیروی لازم به کدام منبع روحانی مراجعه کنیم تا بتونیم چنین واکنشی نشون بدیم پولس به ما میگه با این منابع روح القدس محبت حقیقی و کلام حقیقت قدرت خدا و اسلحه پارسایی در دست راست و چپ در پایان متن در آیات 8 تا 10 او به ما در مورد نتیجه واکنش ما در طوفان زندگی به وسیله اون منابع صحبت میکنه پولس می نویسه گاه احترام و گاه بی احترامی می بینم گاه مورد لن و گاهی مورد ستایش هستم ما را افرادی دروغگو می شمارند حالان راستگو هستیم گمنام ولی در عین حال مشهوریم به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم ما شکنجه می بینیم ولی به قتل نمی غمگین ولی پیوسته شادمانیم ما چون گدا فقیریم ولی در عین حال بسیاری را دولتمند میسازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. همه اینها است از دانشکده خدا که پولس نوشته و طی آن خدا خادمینی را برای انجام کارش آماده میکنه در متن شرحی که پولس برای دانشکده خدا آورده شما موضوع رنج را میبینید که نقش مهمی در آماده سازی ما برای خدمت داره. میتونیم این مفهوم رو در مراسی ارمیا ببینیم که میگه چه نیکوس که در هنگام جوانی صبر و تحمل را بیاموزیم. منظور از این آیه اینه که مادامی که رنج نکشید و تحمل نکنید نمیتونید خادمی شایسته برای خدمت در کار خدا باشید. این و یاد داستانی میندازه که در انجیل یوحنا در باب یازده هست. عیسی دوستی به نام ایلازر داشت که در بیت انیا زندگی میکرد. ایلازر برادر مریم بود همون زنی که پاهای را با عطر تطین کرد روزی ایلازر بیمار شد و خواهرانش برای عیسی پیغام فرستادند که دوستت بیمار هست نزد او بیا ایسا به اندازه سه کیلومتر از بیت فاصله داشت او بلافاصله فاصله به راه نیفتاد بلکه امتن مدتی در آنجا توقف کرد و بعد به بیت رفت و وقتی رسید به او گفتند که چهار روز است ایلازر مرده کاملا واضح بود که عیسی عمدن دیر به اونجا رفت چون میخواست خواهران او با طوفان بیماری و مرگ برادرشون مواجه بشن. و نیز از اونها انتظار داشت که واکنش درستی نسبت به این طوفان نشان بدن. به نظر می‌رسه باب 11 انجیل یوحنا نمونه کوچکی از کتاب ایوب هست. اونجا دو خواهر بودند که خیلی متفاوت بودند. اولی مارتا بود که به استقبال عیسی میره و به او میگه خداوند اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد ما نمیدونیم لحن صدای مارتا چگونه بود اما به نظر میرسه که او می میگفته دیگه شانسی برای تو نمونده پس تو کجا بودی بسیاری از مردم در مورد شبانان چنین احساسی دارند شبان تو کجا بودی خواهر دوم مریم با مارتا خیلی فرق داشت اگرچه مریم هم در واقع همون حرفها رو میزنه گفته شده که وقتی خداوند دنبال مریم فرستاد او نزدش اومد و او هم میگه خداوند اگر تو اینجا بودی برادرم نمرده بود اما وقتی مریم این حرفا رو میزنه به پاهای او افتاده بود و وقتی گفت خداوند اگر تو اینجا بودی برادرم زنده بود خداوند میخواست که اون دو خواهر به طوفان‌های بیماری و مرگ واکنش درست نشون بدن عیسی دید که واکنش مریم این بود که به پاهای او افتاد و گفت خداوند من مرگ برادرم رو میپذیرم سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد. به کررات در انجیل به مریم اشاره شده که همیشه نزد پاهای عیسی هست. اولین بار او رو میبینیم که نزد پاهای او نشسته و به کلام او گوش می کنه. این زمانی بود که خواهرش مارتا شکایت کرد که او نمیاد و در کارها به او کمک نمیکنه. خداوند کلامی گفت و از مریم جانبداری کرد. عیسی به مارتا که او را هم دوست داشت گفت: ای مارتا، ای مارتا تو برای چیزهای زیادی دلواپس و ناراحت هستی. اما فقط یک چیز لازم است. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. این زن مریم نزد پاهای خداوند بود و به کلام او گوش می‌داد. در این متن او نزد پاهای اوست و اراده او را می پذیره. در باب بعدی باب دوازده انجیل یوحنا، او رو می بینیم که باز هم نزد پاهای ایساس و او را پرستش میکنه. مثال مریم به ما نشون میده وقتی شما با مشکلی مواجه می‌شید، و بعد نسبت به اون مشکل واکنش نشون میدید در این مورد واکنش درست رابطه درست با عیسی هست رابطه درست با ایسا منبع نیرویی که مریم رو قادر میکنه در طوفان و مشکلات واکنش درست نشون بده عیسی این دو خواهر رو از طوفانشون نجات میده و برادرشون رو زنده میکنه در عهد قدیم در کتابش عیا در باب چهل آیه 35 متن بزرگ دیگری رو در موضوع رنج میبینیم اشعیا یکی از بزرگترین انبیا در کتاب مقدس است. بنا به گفته عیسی، یحیای تعمیددهنده بزرگترین انبیا بود. یحیای تعمیددهنده آمد که موعظه‌های اشعیا را با مردم در درمیون بذاره. من همیشه بابت او شکر می‌کنم چون که وقتی ما های بزرگی می‌شنویم، اکثر ما واعظین از اونها در موعظه‌مون استفاده می‌کنیم. ما یک نمونه برای اون داریم چون یحیای تعمیددهنده از معزه اشعیا استفاده می کرد و عیسی گفت یحیای تعمید دهنده بزرگترین واعزی است که تا کنن کرده بسیاری از واعظین برای من نامه می نویسند و میگن که از پیغام های من استفاده می کنن. این عالیه و خدا رو شکر چون باید بگم بسیاری از اونها مال من نیست بزرگترین معزههای که یحیای تعمید دهنده کرد همون بزرگترین معزهش اشعیا بود لوقا سه آیات 1 تا 6 شرح میده که یحیای تعمید دهنده از بزرگترین موعظه اشعیا استفاده میکنه. به طور خلاصه اشعیا و یحیای تعمید دهنده این رو موعظه میکنند که وقتی شما میخواهید شاهراهی بسازید، چهار کار انجام میدید. اول بلندی ها رو صاف میکنید، بعد دره ها رو پر میکنید، بعد راه های کج رو راست، و چهارم مسیرهای ناهموار رو هموار میکنید. بعد از اون یک شاهراه میسازید اشعیا و یحیای تعمید دهنده این طور کردند خداوند روزی به این جهان خواهد آمد و او به راهی نیاز داره که در این دنیا سفر کنه. شاهراهی که خدا از آن به جهان وارد خواهد شد زندگی مسیح است زندگی مسیح زندگی کاملی خواهد بود در زندگی عالی او کوههای غرور به تمامی صاف خواهد شد در رها یا خلهای زندگی او مطلقا پر خواهد شد مسیح صد درصد پر از روح خدا خواهد بود در زندگی کاملش او راه های کج گناه رو راست خواهد کرد. مسیح به نقاط ناهموار در زندگیش چنان واکنش نشان خواهد داد که اون نقاط هموار بشد. اون موقع خدا شاهراهی خواهد داشت که توسط اون بتونه به دنیا بیاد. تمام اینها وقتی خدا توسط زندگی عالی مسیح به این جهان آمد تحقق یافت. یحیای تعمید دهنده ایسای موعود را با این موعظه معرفی کرد. و اینک او راهی است که خدا توسط او به این دنیا خواهد آمد. بعد از اینکه مسیح 33 سال در دنیا زندگی کرد به شاگردانش که با او مراسم فسح را جشن گرفته بودند گفت که او این جهان رو ترک خواهد کرد. بعد از مرگ و قیامش به اونها گفت همانطور که پدر مرا به این دنیا فرستاد من هم شما را به دنیا میفرستم. کاربرد این آیه این هست که خدا میخواد به وسیله زندگی من و شما دنیا نجات او رو ببینه. این چطور ممکنه؟ این در زندگی من و شما همونطور امکان پیدا میکنه که در زندگی مسیح امکان پیدا کرد. زندگی او شاهراهی برای خدا بود و خدا میخواد که زندگی من و شما هم برای او شاهراهی باشه. همه ما باید به صورت کاربردی هر روز این دعا رو بکنیم. مرا راهی بکن که به وسیله اون به این دنیا بیای و مردم تو را در زندگی من ببینند و به من قوت بده به من فیض تا فرما تا به نقاط ناهموار در زندگیم واکنش درست نشون بدم تا اینکه تمام دنیا با واکنش من به نقاط ناهموار تو را در زندگی من ببینند از زندگی من چنان شاهراهی بساز تا حالا این دعا رو کردید من تشویقتون میکنم که این دعا رو بکنید و اگر این دعا رو کردید و بلدزرهای خدا وارد زندگی شما شد، تعجب نکنید. توقع داشته باشید که خدا تپه های قرور شما رو صاف کنه. در انتظار این باشید که خداوند دره های شما رو پر کنه، خله های زندگیتون رو. در انتظار باشید که خدا کجی های زندگی شما رو راست کنه و مهمتر از همه، منتظر باشید که خدا به شما نشون بده که چطور به نقاط ناهموار، واکنش نشون دادید و اونها رو به شاهراهی صاف و هموار تبدیل کردید که خدا توسط اون وارد این جهان بشه به طور کاربردی وقتی مطمئن شدید خدا این چهار کار رو در زندگی شما انجام داده اون نواحی رو با این برچسب بلامت گذاری کنید توجه کنید خدا مشغول کار است خدا زندگی شما رو تبدیل به شاهراهی میکنه که برای جلال خودش وارد این جهان بشه قسمت 4 از این عملیات ساختن شاهراه هموار کردن ناهمواری های زندگی هست که به صورت مجازی شرح میده که چطور خدا از رنج ها در زندگی ما استفاده میکنه تا شاگردانی به بار بیاره. من علاقه خاصی به این موضوع دارم چون مردی که به من تعلیم میداد چطور خدا از رنج ها برای آماده کردن ما استفاده میکنه، کسی بود که هجده سال بر روی صندلی چرخدار بود و امروز او به طور کامل از چهار دست و پا فلج هست. خدا از زندگی او بیش از کتاب ایوب و این شرح های کتاب مقدسی استفاده کرده تا به ما دیدگاهی بده که چرا رنج میکشیم. وقتی پولس به ما میگه که خارج جسم او به او یاد داد که فیض خدا برای او کافی است این فقط یک آیه در دوم قرنتیان نیست. این یک واقعیت و تجربهی برای پولس بود. چطور دعا کنیم که این تجربه ما هم بشه؟ در باب پنجم کتاب رومیان بعد از آیه سه شما متن دیگری رو می بینید که پولوس رسول به ما میگه خدا چطور به واسطه ی رنج ها خادمینی به بار میاره آره. پولوس اون پروسر رو این طور شرح می ده. بلکه در زحمات خود نیز شاد هستیم زیرا می دانیم که زحمت بردباری را ایجاد می کند و بردباری موجب می شود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را می آفریند. این امید هیچ وقت ما را معیوس نمی سازد. اگر شما رومیان باب پنج آیات سه تا پنج رو به زبان اصلی بخونید چیزی که عملا پولس میگه اینه که رنجها بردباری به بار میارن و بردباری شخصیت. مفهوم این در زبان یونانی اینه که شما آزموده شدید و تعیید شدید و هر کسی این رو میدونه. بعد پولس به ما میگه که شخصیت آزمایش شده ما رو به اطمینان و امید میرسونه. این اطمینان مهم هست چون وقتی تا به اینجا رسیدید، می دونید که در معرض خطر نیستید یا فرار نخواهید کرد آیا این طور دامه پیدا میکنه؟ کنه اون شرمساری به بار نمیاره. مفهوم اون به زبان یونانی دقیقا اینه که شما مثل یوحنا معروف به مرقص در کتاب اعمال 15 آیات 37 و هفتا عمل نخواهید کرد وقتی اونها سنگ به طرف شما پرتاب بکنن شما فرار نخواهید کرد این معنی دقیق کلمات در زبان یونانی در رومیان باب پنج آیات سه تا پنج هست وقتی که از خادمینی در سراسر دنیا دیدن کردم متوجه شدم که بزرگترین قابلیت در بین خادمین اونی که از همه چیز با ارزشتره چیزیه که بهش پشتکار میگن آیا میتونید به جای مطروکی برید پانزده یا 25 سال اونجا بمونید؟ آیا میتونید در بین کسانی که با شما دشمنی میکنند، طوری زندگی کنید که زندگی شما شاهراهی باشه که خدا توسط اون وارد زندگی اون مردم بشه برای تحقق این امر یکی از قابلیت‌هایی که بیش از همه نیاز دارید پشتکار هست یعنی این قابلیتی هست که در همون جایی که هستید بمونید پولس به ما میگه خدا از رنج ها استفاده میکنه تا در ما قابلیت پشتکار در زندگیمون ایجاد کنه که برای هر خادمی مورد نیاز هست کلمه پشتکار در زبان یونانی کلمه ایس به معنی استادگی کردن در تحت هر فشاری جایی که شخص ضعیف میتونه پرواز کنه این شخص آزموده با شخصیتی امتحان شده میتونه زیر فشار و خطر تا بیاره به گفته پولوس شما باید رنج بکشید و چون رنج پایداری به بار میاره و پایداری شخصیت رو میسازه و شخصیت به شما اطمینان میده اطمینانی که مانع فرار شما در سختی ها میشه و به شما فیض میده که در شرایط فشار و خطر مقاومت کنید. باید به سرعت چند تا از متنهای کتاب و مقدس رو در مورد رنج مرور کنید. در فیلیپیان سه ده پولوس رسول می نویسه یگان آرزوی من اینه که مسیح را کاملا بشناسم و قدرت قیام او را در وجود خود درد کنم و در رنجهای او شریک گشته و در مرگ او هم شکل او شوم. پولس رسول اینجا با ما درباره یک اصل حیات بخش در مسیحیت صحبت میکنه که خیلی خیلی مهم هست. پولس به ما میگه که قدرتی هست که منجر به قیام عیسی مسیح از مردگان شده. همون قدرتی که مسیح را از مردگان برخیزانید، پولس میگه این برای من و شما هم امکان داره که اون قدرت قیام دهنده رو بشناسیم و تجربه کنید. پولوس پولس مینویسه من یاد گرفتم که تنها راه برای تجربه اون قدرت رستاخیز اینه که مفهوم رنج رو درک کنم. به نظر میرسه که هیچ راه دیگری غیر از این نیست. در همین راستا پولس در دوم قرنتیان باب چهار می‌نویسه با وجود این ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست بلکه از آن خداست. از هر طرف تحت فشاریم ولی خرد نمی شویم. گاهی دچار شک و تردید می شویم اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. زمین می‌خوریم ولی نابود نمی‌شویم بدن‌های فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود آری در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می‌شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود پولس به طور تمثیلی بدن ما را به کوزه‌های سفالین تشبیه می‌کند در این کوزه‌های سفالین ما گنجینه‌ای پربها داریم مسیح قیام کرده مسیح زنده که در ما زندگی میکنه خدا میخواد که دنیا بدونه که در این کوزه های سفالین که ترک های بسیاری داره گنجینه بسیار پر ارزشی وجود داره. خدا چطور میتونه به دنیا نشون بده که در این کوزه های سفالی گنجین های با ارزشی هست که زندگی ما رو نمایان میکنه او اجازه میده که به این کوزه های سفالی فشار وارد بشه به عبارت دیگه ما فقط کوزه های کوچکی هستیم این چیزی هست که در این تمثیل گفته شده و چاپلوسی و تملق هم نیست به هر حال در این کوزه های کوچک که ما هستیم گنجینه های با ارزشی هست خدا چطور گنجینه پربه ها رو در این کوزه کوچک به دنیا نشون میده پولوس به این سوال این طور پاسخ میده از هر طرف تحت فشاریم ولی خورد نمیشویم گاهی دچار شک و تردید میشویم اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم آزار می‌بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم زمین می‌خوریم ولی نابود نمی‌شویم چرا داستان زندگی پولس اینطور بود چون خدا می‌خواست به تمام دنیا نشون بده که گنجینه هایی در کوزه سفالی پولس زندگی می‌کنه پولس مطالب زیادی در مورد رنج در دوم قرنتیان داره و هر حال موضوع اصلی نامه او خدمت و چگونگی به بار آمدن خادمین هست. مثلا پولس می‌نویسه بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود وجود باطنی ما روز به روز تازهتر می گردد و این رنج و زحمت ناچیز و زود جلال عظیم و بیپایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم نه به چیزهای دیدنی. زیرا آنچه به چشم می موقتی است ولی چیزهای نادیدنی، تا عبد دوام دارند در این متن پولوس چیزی شبیه به همونی که در متن قبلی گفت به ما میگه و علاوه یک چیز دیگه وقتی که بررسی کتاب های شعر رو شروع کردیم من به این متن که توسط پولوس نوشته شده بود اشاره کردم همه ما یک انسان درونی داریم و یک انسان بیرونی انسان بیرونی بدن ما هست بدن ما محسوس، قابل رویت و بخش مادی وجود ما هست بخش مهم ما انسان بیرونی ما نیست بلکه انسان درونی هست. چون خدا می‌خواد این رو بفهمیم او گاهی به رنجها و یا خستگیها در انسان بیرونی ما اجازه میده اما در حالی که ما خستگی و فرسودگی رو در انسان بیرونی تجربه می‌کنیم انسان درونی ما هر روز قوتی تازه پیدا میکنه. خدا بر رنجها اجازه میده که انسان بیرونی ما رو از پا در بیاره چون که ما بدونیم که قسمت با ارزش وجود ما انسان ظاهری و بیرونی نیست بلکه انسان نامرئی و درونی ما هست انسان درونی ماست که ابدی و ارزشمند هست نبخش موقتی ما نویسنده کتاب ابرانیان کمی فراتر رفته و از حجی نبی مطلبی نقل کرده در کتاب حجی خدا میگه من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود نویسنده کتاب ابرانیان به ما میگه که خدا زمین را متزلزل خواهد ساخت. کلمه ابری برای متزلزل تکان دادن به نحوی هست که تنها چیزهایی که تزلزل نپذیرند باقی خواهند ماند. این متنی ترسناک از کتاب حجیز که در کتاب ابرانیان باب دوازده هم آمده. در آن زمان صدای او زمین را لرزانید اما اکنون قول داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان ها را نیز خواهد لرزانید این کلمات یعنی یک بار دیگر نشان می‌دهد مخلوقاتی که تزلزل پذیرند از بین خواهند رفت و آنچه ثابت است باقی خواهد ماند خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما می دهد سپاس گوییم و او را آنطور که مقبول اوست عبادت نماییم یعنی با خوف و احترام زیرا خدای ما در واقع آتشی است که می‌سوزانند مفهوم کلی اون اینه که خدا به کارهایی متعهد هست که واقعا روحانی و ابدی هستند قوم خدا باید ارزش واقعی ابدی خودشون رو نشون بدن با اجازه دادن به خستگی ها و فرسودگی ها در بدن هامون بخش موقتی وجودمون خدا سعی داره که ما رو وادار کنه که قسمت ابدی و نامرئی خودمون رو اهمیت بدیم خدا این واقعیت رو به ما نشون خواهد داد چون روزی همه چیزهای محسوس مادی و مرعی روی زمین از بین خواهند رفت حجی و نویسنده کتاب عبرانیان همون چیزی رو گفتند که در دوم پتروس باب سه میخونیم که میگه روزی همه این عناصر با آتش سوزانی ذوب خواهند شد و همه این چیزها نابود خواهد شد با توجه به این پتروس سؤالی میپرسه. پس حال که نابودی همه اینها به این صورت مقرر هست شما باید چگونه مردمانی باشید؟ بر شماست که زندگی مقدس و خدا ای داشته باشید؟ با توجه به آیات بالا، باید از خودمون سوال کنیم وقتی خدا دنیا رو متزلزل کنه، آیا چیزی برای ما باقی خواهد ماند؟ آیا چیزی در زندگیتون دارید که تزلزل ناپذیر هست؟ اگر حقیقتا یک مسیحی هستید که در مسیح تولد تازه یافتید، کلام خدا میگه شما بخشی از پادشاهی هستید که متزلزل نیست. اما اون بخشی که تزلزل پذیر و اون بخشی که تزلزل ناپذیر هست کدام هستند؟ بخش تزلزل پذیر مادی هست، محسوس و قابل رؤیت هست و بخشی که غیر قابل تزلزل هست، بخشی که غیر مادی، نامرئی و روحانی هست. نویسنده کتاب ابرانیان باز هم کمی فراتر میره و میگه خدای ما در واقع آتشی است که میسوزاند. به این معنی که خدای ما خدایی است که میخواد هر چیزی که خلاف طبیعت او باشه در ما بسوزونه. اگر شما یک قالب یخ و یک مشعل داشته باشید و اونها رو به آهستگی به هم نزدیک کنید، یکی از این دو حالت اتفاق میافته. یا مشعل یخ رو ذوب میکنه و یا یخ مشعل رو خاموش میکنه. این متن در کتاب عبرانیان به ما میگه که خدا توسط رنج ها یک چنین کاری در زندگی منو شما میکنه توسط رنج ها ما آتش سوزنده خدا رو تجربه می کنیم که می خواد هر چیزی رو که مقایر طبیعت او هست در ما بسوزونه. طبیعت خدا اساسا روحانی هست. خدا می خواد ما رو برای بود ابدی جایی که تا ابد با او خواهیم بود آماده کنه. خدا با رنج ها می خواد هر چیزی که در وجود ما مقایر طبع روحانی او هست بسوزونه آمادهسازی برای حیات ابدی توضیح کتاب مقدسی دیگری در رابطه با دلیل رنج هاست. در غلطیان باب 6 آیات هفت 7 و8 پولس به دلیل دیگری برای رنج شاره میکنه و به ما توضیحی از رنج میده که دوست نداریم بشنویم. پولس میگه که گاهی ما رنج می چون خودمون باعث اون رنج ها هستیم. خیلی هااف میکنند که این آیه به گناهکاران شاره میکنه. در حالی که، او میگه فریب نخورید هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بكارد همان را درو خواهد کرد اما پولس این آیه را برای گناهکاران ننوشته پولس این آیه را خطاب به مسیحیان گلاتی مردمان روحانی نوشته و گفته که اشتباه نکنید خدا رو نمیتونید فریب بدید انسان هر چیزی را که بكاره همان رو درو خواهد کرد اگر بذری را در زمین نفسش بكاره تباهی درو خواهد کرد اما اگر در زمین روحش بکاره بعضرهای روحانی برای او محصول حیات ابدی به بار خواهند آورد بدین معنی که به عنوان انسانهای روحانی ما میتونیم در باغچه زندگی هامون روحانی بکاریم و حیات ابدی درو کنیم یا میتونیم در نفسمون بکاریم و تباهی درو کنیم بسیاری از مواقع ما به خاطر تصمیمات غلط رنج میکشیم اغلب اوقات به خاطر گناهانمون به طور جدی رنج میکشیم. گناهان همیشه عواقبی به دنبال دارند. ما این رو در گناه داوود دیدیم. آیا این امکان هست که یک ایماندار به خاطر گناهش متحمل رنج بشه؟ قطعا امکان داره. ما به مورد 23 از دلایل رنج در زندگی ایمانداران رسیدیم. وقتی که ایمانداران رنج میکشند لازم نیست که با لیستی از سی دلیل نزد اونها برید و بگید علت شماره 23 هست. شما رنج می کشید چون بذر غلطی در باغچه زندگیتون کاشتید؟ این می حقیقت داشته باشه اما از کجا میدونید که این تعبیر درست رنج های اونهاست؟ اون هاست اون میتونونه دلیل دیگه داشته باشه یا شاید 50 دلیل دیگه از کجا میدونید که خدا در زندگی اونها چیکار میکنه؟ من این دلایل رو به این خاطر برای شما ذکر کردم که چرا خدا اجازه میده ایمانداران رنج بکشن چون میخواستم بدونید؟ وقتی ایمانداران رنج میکشند میتونه دلایل زیادی داشته باشه میتونه هر کدوم از این دلایل و یا چند تا از اینها باشه شما کی هستید که تعیین کنید کدوم دلیل هست اگر کسی رو میشناسید که رنج میکشه این سی دلیل رو به او بدید و او را راهنمایی کنید شاید روح القدس او را هدایت کنه که بتونه دلیل رنجش رو و کار روح القدس رو در زندگیش درک کنه اگر شما الان رنج میکشید شاید توسط این سی دلیل روح القدس به شما دیدگاهی بده که بفهمید او توسط رنج در زندگی شما چیکار میکنه آیات زیادی هستند که به مشکل رنج اشاره میکنند مثلا پولس رسول به ایمانداران فیلیپی گفته که رنج یک هدیه است در باب یک آیه 29 فیلیپیان پولوس پولس مینویسه زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید بلکه در راه او رنج هم ببرید به گفته ی پولس رنج یک هدیه است. به گفته ی رنج نه تنها یک هدیه است بلکه هدیه ای است که پاداشی عظیم به دنبال داره. در موعظه بالای که ایسا اینطور تعلیم می‌دهد، حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و به شما اهانت کنند و به شما بدگویند، در آن روز شاد باشید. و از خوشی پاک کوبی کنید چون بدون شک پاداش سرشاری در عالم بالا خواهید داشت زیرا پدران ایشان نیز درست به همین طور با پیامبران رفتار می کردن. پتروس به غریبان پراکنده در روم می نویسه بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دچار رنج و زحمت شده است باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپارد. او میگه این دعوت شماست زیرا مسیح به خاطر شما رنج کشید تا سرمشقی برای شما باشد پس شما باید از او پیروی کنید ایسا همینطور گفته دلیل دیگری که ما رنج می کشیم اینه که دنیا از خدا و از پسر او عیسی مسیح نفرت داره ایسا گفته شما آزمائشات و رنجهای زیادی بر روی زمین خواهید داشت امروز مسیحیان زیادی در دنیا متحمل رنجهای سختی و دلیل اینه که دنیا از مسیح نفرت داره اینها به خاطر ایمان به مسیح رنج میکشند عیسی این رو پیشگویی کرده و گفته که او بیش از هر آیین دیگری باعث خونریزی خواهد شد چون دنیا از او و از خدا نفرت داره عیسی به کسانی که به خاطر او رنج میکشند برکت خاصی وعده داده این وعده ایسا عیسی را هم میتوانید به لیست دلایل تحمل رنج مسیحیان اضافه کنید به شما توصیه میکنم با دعا به لیست دلایل نگاه کنید و از خدا بخواهید توسط روح قدوسش به شما دیدگاهی در مورد رنج هاتون بده و دعا کنید خدا شما رو به کار بگیره و دیدگاهی از رنج های دیگران هم به شما بده در دو جلسه گذشته اکثر دلایل کتاب مقدسی تحمل رنج های ایمانداران رو بررسی کردیم یادتون باشه که خداوند شرایط شما رو میدونه و مراقب شماست اون هدفی داره و اکثر اوقات وقتی ما رنج میکشیم، شاید بیش از یک دلیل داره که خداوند اجازه داده ما از زمانهای سخت عبور کنیم. دعای ما اینه که وقتی یک بار دیگه با سختی مواجه شدید، با دعا بیاد بیارید که چه دلایلی رو ذکر کردیم و از خداوند بخواید به شما نشون بده که چه چیزی باید از طوفان زندگیتون یاد بگیرین. دعای ما اینه که خدا شما رو با قوت به کار بگیره تا موجده انجیل او رو با کسانی که در سختی هستن میون بذارید. تا جلسه آینده که با شما خواهیم بود، امیدوارم این رو بیاد بیارید که فیض خدا برای ما کفایت میکنه.